ماه رمزان را خیلی دوست دارم حتی میهمانیهای این ماه با ماه های دیگر متفاوت است درست میگویی در این ماه مردم بیش از ماه های دیگر به امور معنوی روی می آورند. جالب اینکه مردم حتی در روزهای گرم و طولانی تابستان روزه می گیرند و از صبح تا شب از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند پاسخ به دعوت خداوند شیرین و دلپذیر است مردم برای اونس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد به تلاوت قرآن میپردازند من هم قرآن میخوانم. اما نمیدانم که تا پایان رمزان میتوانم کل قرآن را تمام کنم یا نه هر قدر که قرآن بخوانی خوب است امشب در مسجد دانشگاه مراسم شب قدر برگزار میشود آیا تو هم در این مراسم شرکت می کنی؟ البته من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم به کدام مسجد می روی؟ من به مسجد محلمان می رویم، برنامه خوبی در آنجا برگزار می شود پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم خوب است، حتما مراسم دعا و شب زندداری آنجا برایت جالب خواهد بود